اوزو بالله السمی العلیم من الشيطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن فحیم الحمد لله رب العالمین السلاة و السلام علی نبی نابعاله تاهرین خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام داریم روز به خیر میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به انایت و منت الهی از هر گونه بلایی هم بدور باشید ما بحثمون در انشاء بود و امر رو با هم خوندیم معنای حقیقی و معنای مجازی نهی رو با هم خوندیم معنای حقیقی معنای مجازی و مفصل صحبت کردیم بسیلیم به استفخام استفخام یک مقدار بحثش گسترده تره هم جنبه نحوی داره و هم جنبه بلاغی. ابتدا باید جنبه های نحویش رو با هم بحث کنیم بعد وارد جنبه بلاغی اون که معنای حقیقی استفهام و معنای مجازی باشه برای شما عرض کردیم که استفهام عبارت است از اینکه متکلم از مخاطب طلب فهم نسبت به چیزی رو میکنه. اما شرطش اینه قبل از اینکه این, این استفهام رو بکنه نباید بداند یعنی استفهام میکنه واقعا تا بفهمه بداند لذا سوالاتی که خدا از بنده خودش میکنه ها هیچ کدومش در قرآن استفهام حقیقی نیست چرا چون خداوند میداند سوال میکنه معنای مجازی داره گاه یقعا سؤال میکنه تا ما خجالت بکشیم گاه یقعا سوال میکنه تا اتمام حجت بشه پس معنای حقیقی استفهام اینه طلب فهم از طرف متکلم نسبت به مخاطب طلب فهم چیزی به شرط اینکه اون براش معلوم نباشه. حالا اگه معلوم باشه میگردیم دنبال قرینه. که ببینیم با قول خودمون این به چه دلیل این سوال رو کرده با اون که میدونسته مثلا استاد سوال کرده از شاگرد خب میگیم برای امتحان بوده واسه ببینه او یاد گرفته یا نه بعد گفتیم که استفهام دارای است. یعنی این عدوات استفهام میاد بر سر جمله و جمله رو مستفه همون بها یعنی میکنه یعنی جمله ای که باش استفهام صورت گرفت. پس جمله استفهامیه جمله که با عدوات استفهام که صدارت هم دارند شروع میشه و گفتیم عدوات استفهام دو دستند یه دستشون حرفه یک دستشون اسمه که به اون قسم دوم میگن قسمهای استفهام به اینها هم میگن حرف استفهام گفتیم حرف دوتا بیشتر نیست یکی همزه است و دیگری حل و گفتیم رئیس گروه عدوات استفهام همشون همزه است همین همینم همزه دارای خصوصیتی است یعنی دارای مزایایی است یکی از عمدهترین مزایای همزه استفهام اینه که گفتیم همزه استفهام هم در تصور استفاده میشه و هم در تصدیق گفتیم تصور عبارت است از استفهام از مفرد استفهام از جزء جمله تصدیق عبارت است از کل جمله، کل مضمون کلام لذا گفتیم در تصور شما پاسختون به تعینه پاسختون به تعیینه وقتی میگه تو حسن هستی یا حسین تو نمیتونه بگی بله یا ما آیا تو حسن هستی یا حسین آیا؟ حسنان انت اما حسینان خب اینجا تا باید بگی حسنان یا بگی حسینان دیگه تعیین کنی در استفهام تصوری پاسخ به تعیینه اما در استفهام تصدیقی پاسخ به نعم و لاست پاسخ به نعم و لاست آیا غذا خوردی؟ میگه بد یا می که خیل اکلت اکلتت نعم اولا حالا گفتیم حمزه هم برای تصور استفاده میشه هم برای تصدیق اما حل فقط برای تصدیق حل فقط برای تصدیق این مطلب رو بعد در ساختار ساختار حمزه که برای تصور باشه گفتیم به این شکله اول حمزه استفاده میاد بعد اون چیزی که قراره استفهام بش ازش بعد از همزه میاد بعد جمله تمام میشه بعد ام میاد بعدش یه چیزی که معادل معادل است با اونی که بعد از حمزه استفامه معادل است با اون چیزی که بعد از همزه استفامه یعنی در واقع این ام حرف عطفه اونو عطف میکنه به اون مستفهمون انی که بعد از حمزه استفامه یعنی شما وقتی میگید احسنان انت ام حسینان حسنان خبر مقدم انت مبتدای مؤخر، ام حسینان حسین اتو جای حسن حالا چرا خبر مقدم شد؟ چرا نگفتیم انت حسنان واسه خاطر این چرا خبر مقدم شد؟ برای خاطری که مورد استفهام خبر بود اونا گفتیم انت حسنن ام اخوک تو اسمت حسنه یا دداشوت اینجا سوال رو مبتدا یا یا بگه انا یا بگه اخی انت حسنن ام اخوک مبتدا سر جای خودش سوال در از است هر سوالی که ما در مورد هر چیزی داریم اون میاد بعد از همزه استفهام بعد جمله تکمیل میشه بعد ام عاکفه معادله متصله میاد بعد اون چیزی که مورد استفهام معادله شه بعد از ام میاد و به اون عطف میشه قران هم داریم میگه انتم ام او انتم اشد خلقا ام السما آیا شما خلقتتون سخت یا یا آسمانها خود شما باید بگید یا ما بگید یا آسمان ها دیگه خب قطعا آسمان‌ها قرات خلقتش دستره میگه خدا اونا رو آفریده شما نمی‌تونه بیافرینین انتم عشا دو خالق ان السماوات خب بعد گفتیم که اگر بعد از حمزه تصدیق ام بیاد یا بعد از حلی که برای تصدیق از همیشه ام اون ام دیگه ام متصله نیست ام منقطه است به معنای بله و کلمه ای هم که بعدش مرفوع بیاد خبر مبتدای محظوفه خبر مبتدای بگید محظوفه یه جمله جداست این را خدمت شما درس رو کامل من دوره کردم و بقیه رو بیان کردم حالا بیایید سر درس بی ما بقیت و عدوات الاستفهام سایر عدوات استفهام چجورند یعنی و اسماع استفهام ما گفتیم همزه هم برا تصور هم برا تصدیق حل فقط برا تصدیق الان میگیم بقیه یا استفهام که عبارت هستند از اسما استفهام همشون برا تصوره همشون برا تصوره برای سؤال از مفرد برای سؤال از مفرد جز جنده لذا جواب هم به تعینه جواب هم به تعینه جواب با نعم و لا نیست. چرا چون همه شون برا تصوره خوب این اصمای استفهام چه چیزهایی هستند؟ خب اینها رو تو نقل خوندید مثلا من استفهامیه من استفهامیه معناش چیه؟ یعنی چه کسی؟ ادوات استفهام مثل من استفخامیه میدونم چشم میخوانمش ادوات استفخام مثل من من برای چیه؟ برای سؤال از زویل ما برای چیه؟ برای سؤال از دیر زویل چه چیزی؟ هم؟ حالا اینا چه نقشی پیدا میکنند؟ چه کلماتی هستند؟ مورد بحث ماست پس من یه چیزی رو خواستم اینجا از بحث دوم خودم برای شما داشته باشم اونم این بود که حمزه هم برای تصور بود هم برای تصدیق حل فقط برات تصدیق یا ادوات استفهام که اسماء استفهام هستند همه برای تصورند هم. همه برای تصورند هم. و پاسخ در مقابل اونها همه با تعیین. اینو داشته باشید بعد هم اینو داشته باشید که همه اصمای استفهام توی جمله محل اعرابی دارند. همه اصمای استفهام در جمله محل اعرابی دارند چون اسمند. ولی همزوهل چون حرفند محل اعرابی بگید نداشته. این فرقها این مجموعه رو که قرار با قول هنوز وارد بحث استفخان بلاغی نشدیم نحویه تو ذهنتون ساختارش رو داشته باشد. حالا بحث رو برای شما میخونم چون خیلی دیگه با توضیحی که دادم و مطلب رو بیان کردم شما دیگه جایی نداره که بخواید مگر لغتی چیزی باشه که وارد بقیه استفقام بشن میگه الجمل و سابقت و جمیعه ها توفید و استفقام هم. همه اینها ها افاده استفقام میکنه و هوه کما تلم و این استفقام همونطور که تو میشناسی تلب و علم بشه طلب فهم از نسبت به چیزی لم یکن معلوم من قبل که قبل از استفهام برای متکلم معلوم نیست و عداته فی امثلت طایفتین علیف و به عدات استفهام در دو گروه های دو گروه الف و به الهم زد و فی امثلت طایفت چین؟ خب. و نورید و هنها ان نعرف الفرق بین العداتی مخایم ببینیم خود چه فرقی داره اینا که دو حرف استفامن هر دو تا فرق دارن با هم میگه بله فرق همزه اصل خصوصیتی داره که هم در تصور استفاده می شمد است و نورید و هنها ان نعرف الفرق بین العداتی فل معنا و استعمال هم در معنا که هم تصور تصدیق هر دو برای همزه، تصدیق برای حل، هم استعمال، استعمال عبارت است از در مورد تصور همزه، بعدش عم هم میان، عم متصله، عاطفه معادله و حرف عطفه. تدب بر امثال ادتائفت علف. مثال های گروه یک رو خوب دوش دقیق کن. اعنتل رو همه امشترن انتا ام بافل اشعیرن زرعتا ام قمهاب اراکبن جئتا ام ماشیا ایومل جمعات یستری حلوم مالو ام یوم احد افل بیت سلیتا ام فل مسجد ما مثال های متعددی زدیم اتعدیبن زرفت زیدن ام لعبا مفعولون در تدبر امثال طریفت الالف حیث و عدات و استفخام یال حمزه تو جایی که عدات است تدبر تجرب دقت کن خواهی یافت انل متکلم فی کل منها یعرف عرفون نسبت علتی تزمن حل کلام مو... اینجا متکلم اصل جمله رو میدونه مثلا تو اون اولی انتل مسافر و احمق میدونه یه نفر مسافره جون دو نفر وای یه بیلیت دارن یه ساک میدونه این آقا یا ددوشهش یکیشون مسافره مسافر بودن شون معلا ولی چرا اومدن داخل اتوبوس وای سدان یه بیلیت هم دستشونه و اینو میدونه از مسافر بودن یا نبودن سوال نمیکنه که شما بگید سوال مسافری یا نیستید این هم اینو میدونه فقط نمیدونه که این آقا مسافر یا ددوشش برای از مفرد داریم مسند و نهی سوال تجد اندال متکلن فی کلن منها یعرف اون نسبت علتی تزن من هر کلام ولیکن نهو یتره بین شیعین یعنی بین دو جوز شک داره که خودش یادادشش و یتلو با تعین اهده هم طلب میکنه از مخاطب که تعین کنه یکی لذا جوابم با تعین لعنهو فیلم سال الول مثلا یعرف و اندال واقع اون فیلن میدونه که سفر قطعا واقع شده، به قراره که مسافر باشد یکی شد. و انشا و این سفر به یکی از این دوتا صد, صد تحقق داره او آخری. حالا یا مخاطب یا داداشش. یکیشون مسافر است. مفهوم لایت معرفت نسبه. اینجا معرفت نسبت مضمون کلام. آ اصل جمله رو نمیخواد سوال کنه و این نمایت رو با معرفت مفرد بلکه میخواد مفرد رو بشنوسه که ماس نداره و ينتظر رو و انتظار داره من المسؤول یعنی من المخاطبه و انتظار داره از اون که سوال ازش داره میکنه یعنی مخاطب ان يعین له ذلك مفرده و يدل له علی اینکه اون مفرد رو برای این مشخص کنه و این رو به اون راهنمایی کنه که این مفرد خودشه یا نهش و لذالکه یکونو جوابهو به تعین و یقالو لهو اخی یعنی اخی رو مثلا یا انع المسافر و باید جواب بده و المثال سالستانی یعلم و عن انو من منشه این از شراق اول میدونه یا خریدن یا فروختن یکیش به این آقا منصوبه تو این وسط دکون واجسته باقید نمیدونه این مشتری اینجا وایستده یا بروشندست مواده پشتی میرونه دخل وسط دکن وایستده نمیدونه کدوم میپرسه به بخشید شما خریدارید اینجا یا مشتری هستید یه چی رو میدونه هست محشه این اششراع اول بیعه و فلم سالستانی یعلم و سائل و اندواه من محشه اینه اششراع اول بیعه قد نصب ایل المخاطب فیلن ولیکن نهو مترددون بینه فلا یدری احوه شراع و عمل بیعون نمیدونه که این نسبتی که برای این هست این چیزی که به این اصنات پیدا میکنه این مصند شراعه برای این انتر یا بیعه این آقا مشتری یا باید فهو و زن لا یطلب و معرفتن نسبت این نمیخواد اصل مطلب رو بدونه که جوابش بدی بله یا بگی نه نه آنها معروفه نه میدونه که این براش مشخصه که شما یا مشتری هستی یا غریدار اما نمیدونه کدوم شید ولکن هو یسالو مفردن و یطلب تعینه این داره سوال از مفرد میکنه یعنی مسند و یطلب تعینه تعین و لذا جواب به تعین و یقال له فی الجواب باعون یعنی باعون علم من خریدار یا مشتره یعنی انا مشتره مثلا و حاکزای اغالو فی بقیه تمثلت تایفته همینطور تو بقیه که من براتون توضیح ده نگه حالا اگه رو نگاه کنی در استعمال و ازا تدبرت المفرد مسئول انه فی امثلت حاضر تایفه اگه به مفردی که مورد سوال واقع شده در این مثال ها دقت کنی و کزالکه فی کل مثال آخره یعرز و و همچنین در هر مثال دیگری که بر تو آرز بشه مثل همون انتم اشد خلقا ام السماء که من از قران مثال زدم هر مثال دیگه که بر تو عارض بشه وجدته دائما یاتی بعد ال حمزات مباشرتن میبینید که اونی که مورد استفهام میاد دائما بعد از حمزه به طور مستقیم سوا اون اکانه مسند الایه حالا اونی که بعد از حمزه اومده مسند الایه باشه کما فل مثال اول اما مسندن کما مثل مثال ثانی ام مفعولا به کمافه سالس ام حالا کماف رابه ام ظرفا کمافه خامسه ام قهر سالک یا قهر تو ام قهر یا گفتم ظرف مکان مقام باشه مفعول لح باشه و وجد تلهو معادلن و اگه دقت کنی ببینی یه معادلم براش ذکر میشه یواز بعد ام و اما آتفه متصل معادله این معادل بعد از اون میاد کماتر آفل همسلته تمام شد بقلش میدوستین نود پنج درصد بلکه نود هفت درصد همین طوره یعنی ساختارش اینه که همزه اوله هم یکی به آخره و استفقام است. مثل اهن، توم، اشد، دو ساختار اینه اما سه درصد، 5 درصد میشه که گاهی اوقات میشه که گاهی اوقات ها؟ اون ام با اون مابدش یعنی ام عاطفه حرف عطف با مابدش به قرینه هست میشه درست شد؟ به قرینه هست میشه با قرینه نزا گفته وقد یهزد قد بسر فعل مزاره یعنی چی؟ گاه یعنی سه درصد، پنج درصد. گاهی اوقات قدیو یهزف و هازل معادل گاهی اوقات این معادل هست میشه بقلش منیویسی با وجود قرینه لفظی یا قیل لفظی، حتما با وجود قرینه چون هی هیچ هستی بدون قرینه نمیشه گاهی اوقات با وجود قرینه این معادل هست میشه مثلا تو مثال اول قرینه حالیه هست میگه انتل مسافر معلومه میفکنی ام اخود. ام مشترن انتل این مشترن آورده بعد از همزه گذاشته خودش نشون بده که این مورد استفهام بوده خب معادل هم داشته هم باید درست شد و حلوم مچربابه بر همین دیوس وقتی میگه اش شعیرن زرعته شعیرنی که به آورده پشت همزه گذاشته معلومه که بعدش بوده هم قمها چون بحث این بوده که این زمین ها رو جمع میکارن و جندوم میکارن داشتن بحث میکردن حالا پرسیده اش شعیرن زرعته اون ها، میگه نه میگه شعیرن زرعتو زرعتو شعیرن, شعیرن. یا میگه غم هم به قرینه تمام شد اون زن اله امثلت طایفت بین بیران نگاه کن حیصا عدات و استفهام بیال همزه تو عیزت عدات استفهام باز حمزه است اما فرق داره اینجا امی و معادلی وجود نداره جا سوال از اصل جمعه است لذا پاسخ هم با نعم و لاست هی الحمتو اون الی عمصل الطاعف به حیثو هدات الاستفهام هی الحمزتو, الحمزتو عیضا تجد الحاله علی خلاف ما کانت فی عمصل طائفه علیف میبینی اینجا قضیه برعکس اون گروه علفه فان فا المتکلم هنا مترددن بین ثبوط نسبت و نفیها میبینی که متکلم در اینجا تردید داره بین اینکه این نسبت هست یا نیست اینکه طلا زنگ میزنه یا نمیزنه نمیدونه داره سوال میکنه که طلا زنگ میزنه یا طلا زنگ نمیزنه داره یکی شما بگه نه یا بگی لا درست شو بینالمتکلم ahoma مترددون بین سبوت نسبت و نفیه فوهو یجهلوها پس اون نمیدونه نسبت رو ولی زالکه انها و لزالکه عنها و یطلب معرفته سوال از نسبت میکنه مضمون کلام میکنه اصل جمله میکنه و میخواد بشنسونه مثال سال سادسه مثلا یه ترد در متکلب بین سبوت صدعیل زهب و نفیهی اخت سوال داری میکنه که آیا زنگار ثابت میشه برای تلا یا نمیشه زنگ میزنه تلا یا نمیزنه ولی زالیکه یطلب با معرفت حاضر نسبت میخواد معرفت اینو بفهمه. و یکونو هو به نعم جوابش با نعمه این ارید الاسفاد اگه قصدمون باشه بگیم بله طلا زنگ میزن و بلا و با لفظ لا این ارید الناب اگه قصدیم باشه که بگه نه طلا زنگ میزن تو معایدتا لاه دیگه که اگه گفت اگه از و زهب میگیم لا و ازا تعمل تعالی هم سلطه هنها اگه مثالها رو در اینجا نگاه کنی لم تجبل المزئول اند و هون نسبت و معاد میبینی اینجا معادلی وجود نداره و گفتیم اگر یک موقعی هم امی مادر اینجا دیدیم که مثلا در حد دو سه درست ممکنه یه موقع تو عبارت بیاد اون ام هم همه منقطع است و به معنای بله ازرابی است به معنای بله نقطه سرخد و من ما تقدمه ترا انلل همزت استعمال این فتارتن یطلب و به ها معرفت و مفردن؟ و تارتن یطلب و به ها معرفت و نسبتن و توسما معرفت المفرد تصورن و معرفت و نسبت تصدیق دو نوع استعمال داره معرفت مفردش میشه تصور معرفت نسبتش میشه تصدیق و ما اینو کامل دیدیم حالا اونز اینا امثلت طایفت جیم مثل گروه ب یعنی شما میتونه حل ورداری زاشت همزه بزر. اون گروه دم میتونه حمزه رو بردوره جاش حل بزنه مترادفن انزل الا همسله طائفه ج حیصا حدا طول استفهام حل تجد انل المتكلم في كل من هو لا یتردد فی معرفت مفرد من مفردات باز اینجا شک در شناخت مفردی از مفردات ندونه ولکن هو متردد فی معرفت نسبه شک داره در این که اصلا این جمله هست نیست فلا یدری اما اصفتتون هی ام منفیتون نمیدونه این نسبت هست یا نمیدونه نیست در هست و نیستش و ببایی اصعال و پس او داره سوال از اصل جمله میکنه و لذالکه یجاب به نعم انعری در و بلا ان در النفی درست شد؟ با نعم اگر قصدش اثبات باشه بالا اگر قصدش منفی یعنی اگه گفت هل یعقل الحيوان او آیا حیوان تعقل میکنه عقل داره حیوان دو دو تا چهار تا میکنه ها اگر بخوایم بگیم بله حیوان عقل داره میگیم نه یا بخواد بگیم نه حیوان نمیتونه یه انسانه که عقل داره عقل نعمت خداست و بالاترین رحمت الهی بر انسان لذا انسان بالاترین مخلوق خداست چه خاطر عقلش حلی عقل الهیوانو لا اما اگه گفتم حلی عقل الهیوانو گفتیم نه و بلا این اریدن ولو انکه تطبعت جمیع الامسلات اگر شما بیای همه مثال هایی که علتی یستف همو فیها به حل با حل توش استفهام شده مورد مداقه قرار بدید چه در قرآن چه در حدیث چه در شعر با حل هست لوجت تل مطلوبه هوه معرفتن نسبت لعیس خیلی رو میبینی که اونی که مطلوب مورد سواله اصل جمله است و نقلی رو فهل ازن کونه الا لطلب تصدیق پس حل فقط برای طلب تصدیقه و یمتن مهمه ها ذکر المعادل و ذکر معادل هم بهاش امکان ندارد خوب برای خاطر اینکه یه بقول خودمون آنتراکی به شما داده باشم و بتونید این مبحث رو جمعش بکنید که من هم توضیح دادم کامل و خوندم قوائد رو خودتون تو یک دقیقه نگاه کنید من سکوت میکنم تو یک دقیقه دو دقیقه نگاه کنید بعد بقیه استفهام رو که بحث نحوی است براتون خواهم خوند و توضیح میدم خوب دقت کنید حالا شما بقیه ی عدوات رو که همه گفتیم چی اسمند و چون اسمند همه محل اعرابی دارند توی جمله درست شد همه محل اعرابی دارند توی جمله برخلاف همزه و حل که حرف بودن و حل اعرابی نداشت همه ای اینها چه اون که حرفه چه این استفخام هایی که اسمند و, اسم و استفهام صدارت دارند در اول جمله میاد درست شد صدارت طلب هست استفهام خب ادوات استفهام اسم که بهش میگن اسماء استفهام کدوماست صفحه دوم تو قواعد نگاه کنید اینجا هم بحث نحوی میخواییم بکنیم هم خوب دقت کنید قواعد مل استفهام عدواتون اخرا. برای استفهام عدوات دیگری هم هست غیر از حمزه و حل که خوندیم غیر حمزته و حل غیر از حمزه و حل عدوات استفهام دیگری هم داریم و من ببین یک ما دو متاسه ایانه چهار کیفه پنج اینه شیش انه هفت کم هشت ایا نه نه تا عداد استفخام شمرده اینها اصما استفخامن همشون توی جمله محل اعرابی دارن یعنی یا محلن منصوبن یا محلن مرخوهن یا محلن مجد خوب نقششون رو جمله باید بفهمیم اینها رو. درست شد یه دونه اولین ای که میگم مینویسید اینه منویسی تمامی این عدوات استفهام صدارت دارد مثل حمزه و حل این مطلب اول که گفته تو جمله اول کنان دوم دومین هاشی دومین تبصره این عدوات استفهام اسمی همه مبنی هستند بجوز ایو بجوز ایو یعنی آخری که معرب است ایو معرب یعنی میگیم ایه ایو عیه برز شو تفسیر سبون ایو برخلاف این اسمای استفهام معرب و دائم اضافه است همه اضافه شدنش باعث شده که مقرب بشه و دائمون اضافه است و اگر ندرتن در جایی با وجود قرینه مضاف علیه آن حذف شود تنوین عوض تنوین عوض به جای آن می آید به جای آن می آید. الان شما اگر ای حتما شنیدید دیگه این ور برام دیدید میاد به عین ذنب قتلت به ایه زنبن قتلت الان ایه اضافه شده به زنب دائم اضافه است اما به که حرف جرده ایه رو چکار کرده؟ بگیر جرد داده به ایه یعنی تشکید داره زیرش کسره به ایه زنبن قتلت این به ایه مقدم شده متعلق به قتلت به کدامین گناه کشته شده است این دختری که زنده به گور شده خب. حالا باید شما تعیین کنید اون. کسانی که زنده به گور میکردن تعیین کنن به کدام گناهین رو کشتن به ایه زنب خود حالا ممکنه ندرتن یه درصد دو درصد با وجود قرینه چون بحث گناه شده بود و بحث خطای بود و فلان مثلا اینطوری اون زنب بگید میافته میشه به عین قتلت این به عین قتلت یعنی به کدامین کشته شد اون کدامین یعنی تا نقطه یعنی گناه پس ایو معرب و دائمون اضافه است گاه در حد یک درصد ممکن است مضافان علیهش به قرینه حصف بشه و تنوین عوض به جای اون میاد. ولی بقیه ی عدوات همهشون همشون بگید مبنی هستند. و محلن مرفو محلن منصوب محلا مجبور درست شد؟ خب. حالا بیاین سر این کلمات وحیم من من و ما یه جور استعمال میشن یعنی من و ما استعمالشون یه جوره فقط فرقشون در اینه که من برای و عقول به کار میده ما برای غیر زویل من میشه چه کسی ما میشه چه چیزی فقط فرقی نه ولی از نظر اعرابی نقش تو جمله مثل هم استفاده بشه یعنی میتونه مبتدا بشه میتونه مفعول بشه میتونه مضاف، الهی بشه میتونه مجرور به حرف جر بشه نقش خودشو پیدا بکنه. درست شد ما من من و یطلب و به ها من باهاش تعین و لعوالا تعین و الان اگر من گفتم به شما نگاه کنید من انت من انت و من چه نحشی از ارابی داره, داره محلن مرفو خبر مقدم انت مقتدار گفتم من جا هم. کی اومده؟ من میشه چی؟ مبتدا جمله جا خبر من رأیت من چه نقشی داره؟ مفعول رأیت مقدم شد گفتم به من مررت به من مررت از کنار کی گذشتی الا من سللمت بر چه کسی سلام کرده مجبور به حرف جر شد درست شد نقشش تو جمله تعین میشه که چه نقش شده درست شد جرث گرد ما هم عین همینه ما هم این همین الان گفتم ما هازا. این چیه؟ میشه خبر مقدم ما وسله چی رسیده مثلا نامه درست شد میشه مبتدا ما اکلته میشه مفعول به ما مررته از کنار چه چی چیزی گذشتی میگه جیدار دیوار پس نقش این دوتا یکیست نقش این دوتا تو جمله یکیست فقط فرقش اینه که من برای زبل اغوله و ما برای غیر زبل اغوله. حالا اگر یه زمانی مثلا من اینطوری گفتم من رأی تهود بذاری شما چقدر استعداد نه اصلا گفتم من رأی تحول. من چه نقشی دارد؟ من رأیتهو من رأیتهو اگه بود من رأیته شد مفعول من رأیتهو چی خب این باب اشتغال میشه نه بلدید میتونید بگید من مبتداست رعیته ها جمله خبرش که این بهتره تو بابش داره میتونیم بگیم من مفعوله یه مقدره که این رعیته او تفسیرش میکن که اینجا تو بابش میگن این اگر بگیم مبتداست بهتر. همون مباحث خودمون که تو جمله چه نقشی داره شما این رو تو این دوتا میبین پس من و ما رو از نظر لفظی فهمیدیم که چگونه جای سختی هم نداشت. فقط یه چیز رو یاد بگیرید. گوش یه چیز اینجا است ها که ما دو نوع استعمال داره ما دو نوع استعمال داره. یکی مایه درسته ما به منه چه چیزه؟ ولی دو نوع استعمال داره، دو نوع معنا داره. یکی بهش میگن مای شرح اسمی و یکی هم مای حقیقت المسمه حقیقت المسمه یعنی ماهیت اون چیزی که نامش برده شده شرحل اسمی و حقیقت المسمه یعنی وقتی ما میگیم چه چیز این چه چیز ممکنه از نوع شرح اسم باشه ممکن از نوع حقیقتون مصممه باشه حقیقتون مصممه باشه حالا شرحول اسم چیه؟ حقیقت مصممه چیه؟ گوش میکنیم الان بیاد توی امثله کتاب برا من دو تا مثال زده زابه اغوله هر دو هم من توش مبتداست. تو جملهست جمله است جمعه قاهره خبره جمله هفرتور اتس خبری خبره میگه من اختدتال قاهره قاهره رو کی پایه کرد کی نقشه شهر قاهره رو کشید مثلا میگه شهر فستاد رو امراض ملعون بنا کرده تو مصر قاهره رو کی نمیدونم والا یکی از اون پاشاهای مصر بنا کرد از اون پادش من اختتت قاهره شما مثلا میایید و نام او رو میگید. من حفره ترعت از سویسی یعنی کانال سویس کانال سوئیس، کانال سویس که در مصر هستش من حفره کی اولین بار این کانال رو حفر کرد و این آبراه بین به رو ایجاد کرد من حفرت و از سویسی. خوب یک نفری بوده و این کار رو کرده حالا سلطان سلاح الدین بوده کی بوده تو تاریخ اسمش هست نگاه الان اینجا من مبتداست جمله بعد خبر. سوال از زول اقول شده چه کسی این کرد؟ اما کرده اما چهار که نگاه بکنید سه و دو تا مثال برای مازده، اما با هم فرق دارد یکیش اولی ما شرحول اسمیه دوامی حقیقتون مسمست شرحول اسمیه و دیگری حقیقتون مسمست خب ما یه شرح اسمی کدومه ماییه که شما سوال میکنید از شرح اون کلمه اون اسم معنای اون کلمه اون اسم رو میخوایید بدونید الان نگاه کنید میگه مل کرا کرا چیست فرض کنید من یه ای داشتم میخوندم اینطور نوشته بوده قلب انی فلمجلس الکرا قلب غلبه کرد بر من مجلس. در اون مجلس الکرا الکرا بر من قلبه کرد در اون مجلس باب. موندم توش که طرف گفته قلبنی نیفل مجلس الکرا این الکرا چیه چی بوده اومده برش غلبه کرده مثلا کرال یعس کرا چورته کرا اسم کسیه دل درده چیه این کرا رو نمیدونم از شما می که اینجا نوشته که قلبنی فل مجلسه الکررا مل کرا ببخشید کرا چیه؟ شما میگید الکرا الوم آه فهمیدم کرا یعنی الاز، انم چورد خ یه کل من سوال کرد. این شما ماشررح اسمی درست شد؟ اما؟ مای حقیقت المسمد دومی دو مل اسراف تو دومی دو فرض کنید من دارم یه عبارتی رو میخونم نوشته رم فعل اسلامه حرم الله فعل اسلامه الاسرافه خدا حرام کرده در اسلام اسراف رو ما اما هو فعل اسلامه الاسرافه. لغت روغتشو میدونم اسرف و یصرف و, و اصرافن یعنی تجاوز تجاوزه از حد گذشت اما نمیدونم علی اسراف که خدا حرام کرده این چیه یا حرم الله و الاسلام اسلامه علقیبته قیبت رو خدا حرام کرده این از شما سوال میکنم مل اصراف ببخشید اصراف چیه تو این جمله ملقی به ببخشید وسیله منظور چیه؟ اینجا نمیخوام به شما برای من اسراف رو تو توصیف بدهید یعنی اینکه تجاوز یا غیبت رو یعنی پنهان شدن. مم؟ اون. این که لغت. اینجا شما میاد اسراف رو بر من تعریف میکنید. یعنی حقیقت المسمى یعنی تعریف این مصما رو بیان میکنید. میگید علی اسراف هو اسراف امارات است. از حد معمول یک چیزی بیشتر مصرف کردن در جایی که لازم نیست یه <تصفيق> ها فهمیدم قیبت میگی عبارت است از اینکه کسی نباشه شما پشت سر او ای به او رو بگید ای که مخاطبم نمیدونه شما میگید یا اگر اون شخص هم به گوشش برسه ناراحت میشه خب پس فهمید قیبت ای حقیقت ما یه, ما یه حقیقت المسموز مای شرحل اسمی داریم و مای حقیقت المسموز حالا این ما میپرسیم ملکرا یا میپرسیم مل اسراف از کجا میفهمیم که طرف سوال شرحل اسمی داره میکنه یا سوال حقیقت المسموز ما خب اون دیگه به قرینه میفهمیم دیگه اگر گفتش این جمله رو من خوندم نمیدونم کرا چیه ملکرا میفهمیم شرحل اسمی اگه ای گفت این عبارت رو تو این کتاب فقی خوندم اینجا دارم میگه که خدا اسراف رو حرام کرده اسراف چیه و میفهمیم محضورش ناغت نیست درست شد پس مای شرحل اسمی داریم ما. خوب این ملکرا و مل اسراف این ما چه نقشی داره خبر مقدمه مقده های مقده های خب ما و یوت لبوبه ها شرحل اسم او حقیقتون مسمه که برای غیر زویل اغول هم هست این دوتا تمام شد میایم متا ایانه اینه ستا متا ایانه عینه حالا بعد اننا رو هم گاهان و ولی اینستتا نقششون یه جوره هر ستا زرفند هر ستا ظرفند مفعول هم یعنی محلا منصوبند فقط متا و ایانه ظرف زمانه اینه ظرف مکانه درست شد یعنی اگر من گفتم متا تحضر کی حاضر میشی؟ اویه متا محلل منصوب مفعول فی متعلق به تخسش. درست شد؟ اگه گفتم متا سفرک وک خبر مقدم متعلق به ثابتون موجودون خبر مقدم سفرک مبتدایه. اگه گفتیم عینت تذهبون حبون آی قرآن عین محلم منصوب ذرف متعلق به تذهبون عین انت اینه خبر مقدم انتا مفتادای ماخر نقصشو دیگه میتونید داشته باشید این ستا دوتاش ظرف زمانه یکیش ظرف مکان نگاه کنید اینه رو چون میگه؟ میگه اینه و یوت لبوبه ها تعین و مکان یعنی ظرف مکان مطار نگاه کنید و یوت لبوبه ها تعین و زمان رو ببین و یوت لبوبه ها تعین و زمان ولی بین متا و ایانه فرق است فرق معنایی ها. متا هم برا گذشته به کار میره هم برا آینده سوال از گذشته سوال از آینده میتونم بگم متا هضرته که حاضر شدی؟ شما میگید مثلا یک ساعت قبل میتونم بگم متا تحضر که حاضر میشی؟ شما بگید یک ساعت بعد هم سوال از گذشته میکنه متا جئت کی اومدی متا تجئ او. کی میای سوال از گذشته آینده با متا میشه با متا سوال از امر مهم خیلی خیلی مهم و امر عادی و معمولی میشه مثلا میگم متا تقوم القیامه چه قیامت به پا میشه خیلی مهم نه قیامت و... مطا تقویم و قیامتو یه بارم میتونم بگم متا نعکل و چه غذا میخوریم هم مهم باشه هم غیر مهم باشه با متا صورت میگیره هم مازی باشه هم مستقبل باشه با متا صورت میگیره اما در مورد عینه یک باید مستقبل باشه دو باید خیلی خیلی مهم باشه در مقام تحویل با هید و چشمه اینه هولنگیز باشه لذا میتونیم بگیم ایانه یوم القیامه ایانه یوم القیامه چون یوم القیامه خیلی مهمه مستقبل هم هست هر دو تا پس با عیانه یک مستقبل دو مهم در مقام تحویل تحصیل ولی متا نه هم میتونه ماضی هم مستقبل هم مهم هم غیر مهم این فرق از نظر معنیین ها با هم داره نگاه کن متا یطلب به ها تحیین و زمان ماضیان کنه او مستقبلن درست شد مهمن کنه او غیر مهمن در مقام تحویل باشه یا نباشه فرقی نمیکنه اما ایانه یت لوابه ها تعیین زمان المستقبل خاصتاً فقط و تکون فی موسم تحویل در مقام هولانگیز بودنه یعنی یه چیز خیلی مهمه عادی نیست حالا بیای توی مثال هایی که ایشون گفته پنج و رو نگاه کنی پنج و یکیش ماضی یکیش مستقبل حالا ممکنه یکیش بگید مهم به یکیش غیر مهم به فرجی نمی متاس. متا تولل خلافت امرو امر خلیفه دوم کی خلافت رو به عهده گرفت سوال از موسی چه زمانی درست شد؟ دو متا یعود المسافرون های ما که رفتن مثلا به حج کی برمیگردند سوال سؤال از آیند یکیش ماضی یکیش مستقبل ممکنه مهم باشه ممکن نباشه درست شد متا تقوم القیامت رو که قیامت باشه اما در مورد هفت و هشت ببینید یسعلا ایانه یومد یوم القیامت ایانه خبر مقدم یوم القیامت مطلبی ماست میگه سوال میکنه چه وقت روز قیامت است هم آینده است هم مهم یسالو نکه از تو سوال میکنن عن الساعه از ساعت یعنی یوم القیامت اسم دیگر روز قیامت ساعت از ساعت یسالو که عن ساعت از قیامت سوال میکنه چی قیامتو سوال میکنه ایانه مرسا یعنی عیانه ارسا چه وقتی محل وقوعشه لنگر انداختنش کیه وقت وقوعش کی عیانه خبر مقدم مرسا ها مهم هم قیامت آینده است. پس عیانه چه میینه قیانه بعد بیاید سر کیفه کیفا یطلب بها تعیین الحال کیفه تعیین حال یعنی چگونگی باش سوال میشه معناش یعنی چگونه لذا منصوب میشه بنابر حالیت مثلا میگم کیفا جئت کیفه میشه محلا منصوب حال از برای تائ جئت گاهی اوقاتم منصوب میشه خبر کانس مثلا کیف کنته چگونه بودی؟ گاهی اوقات هم مرفوع میشه خبر مبتداست کیف انته؟ در هر سه صورت مبنی بر فتحه حالا یا محلن منصوب حال یا محلن مرفوع مبتدا یا محلن منصوب بگو خبر کان است یعنی منصوب الابتدا ابتدا این جمله عدات نسخ بهش داخل شد همین صورت صورتو داره دیگه یعنی یا حال مثل کیف جهته یا مبتدا مثل کیف انته یا خبر کان است مثل کیف کنت محل منصوب منصوب گونگی رو بیان میکنه کیف؟ خب اینم فهمیدین ظرف نیست این حال است یا خبر است دوست شد. یکی از این دوتاست یا حال منصوبه یا خبری حالا اگه خبر مبتده باشیمش مرفوع خبر مثلا کهانه باشه میشه منصوب صدارت داره مقدم میشه اینم مال کیفه حالا برای همین نگه داشتم انا رو که الان بگم سه تا استعمال داره که ما این ستا رو توی جمله متوجه میشیم کدومشه به یکی از این سه معنا میاد ولی اگه انا رو از من بپرسن میگن انا چیه نمیتونم بگم میگن میتونه این باشه میتونه این میدون تو جمله که بگی من میگم کدومشه درست شد حالا چطور انا میگه برای چند معنا میاد تعتیل معان عدته یعنی متعددات برای یه معانی مختلفی گاه به معنای کیفه است خب اگه به معنای کیفه باشه چی میشه؟ میشه محلن منصوب حال یا میشه خبر مبتدا یا خبر کانه ها؟ یا میشه مبتدا خبرش یا میشه خبر کانه یا میشه, کانه؟ یا میشه حال که این ستاست دیگه مثل کیفه میشه مترادفه با کیفه چه خوند؟ و به معنا من عینه. کوئی وقت میشه به معنای من عینه یعنی از کجا میشه ظرف ظرف مکان. من عینه. کوئی اوقاتم میشه به معنای متا یعنی چه وقت. به معنای متا یعنی چه وقت میشه ظرف محل منصوب. ظرف مکان میتونه بشه من عینه. ظرف زمان میتونه بشه متا کیفه هم میتونه بشه حال بشه یا خبر مبتده بشه یعنی یه مترادف یک نیسته الان مثلا اگر شما قرآن بخونید میبینید که میگه یا وارد مهراب حضرت مریم میشد حضرت مریم در حال عبادت وارد میشد میدید اونجا قضا هست رسیده برای حضرت مریم بعد سوال کرد گف انا قشنه این کنید انا لکه هازا انا لکه هازا گفت مریم انا لکه هازا هازا یعنی هازا تا این غذا از کجا برای تو هست انا اینجا بشه معنی من معنی ها یعنی من منعین لکه هازا عین لکه این انا لکه خبر مقدم قازا مفطدای ماخ اینجا انا به معنای منع عینه بود صرف مکان از کجا این قضا برای تو رسید خب انا شد به معنای منع ما با معنا فهمیدیم ده. نقشش هم نقش منع عینه میشه پس یکی از این معانی رو پیدا میکنه عنا درست یکی از این معانی رو پیدا میکنیم تو جمله ما تشخیص میدیم و فلش میکنیم کم کم کم استفاده این به بها تعین العدد باش تعیین عدد میشه حالا نقشش هم تو جمله شما میده. مثلا میگیم کم کتابن اندکه چه نقشی داره؟ کم کتابن اندکه میگید کم مبتدا کتابا تمیزش این دکه جمله این جمله خبر یعنی چند کتاب پیش تو هست چندتا کتاب پیش تو کم رجلن رأیته؟ چندتا تا آقا دیدی کم میشه مفهوم. کم رجلن رید به کم درهمن اشتره ای به کم درهمن اشتره یعنی با چند درهمینو خریدی به کم جارو مجرور متعلقه به اشتری مجرور شده به کم محلن مجرور برات تعین عدد اگر گفتم کم کتابن اندکه میگه اشرون کم رجلن رأیت میگه اشرین به کم درهمن ها هازل کتابه میگه به اشرین درهمن جواب میده دیگه کم و یطلبه ها تعیین العدد باهاش تعیین عدد میشه ایو چی؟ ایو خودش به معنای کدام کدام معنا نداره باید یه مضاف داشته باشه دیگه کدام مرد رو دیدی کدام گناه کدام کتاب ها ای رجلن ای کتابن ای زنبن شد معنای ایو از مزافون الهیش فهمیده میشه کدامین کدام مضافون میشه که مشخص من لذنیه همیشه دائم و لذاب هست مورب هم هست مضافون الهیشش در حد یکی دو درصد ممکنه بیفته و به جای اون تنوین عوض آورده میشه درست شد الان نگاه کنید ایو و یطلب به ها تعین و عهد متشارکین فی عمر یع امه همه یکی از متشارکین متشارکین یکیشو رو تعین کنید در یه عمری که اونارو عمومیه، مثلا فرض کن میگم ایو ایکم اکبرو ایوکم اکبر و چند نفر هستند میگم ایوکم اکبر و سنان اینها در بزرگ بودن به قول خودمون با هم مشترکند ولی یکیشون بالاتره ایوکم اکبرو سنن در یه امری که اونها رو مشترک می‌کنه. یعنی بعدیه اشتراکی داشته واشن دیگه اینا همشون تو یه سن سالن ما میگیم کدومشون بگید بزرگتره. حالا مثال خواهیم زد. و یات لاوهها تعیینو عقد فی امر یوم این در جاییه که به خودمون سوال از کدامین شما درست شد سوال میشه و یوس بها ها حالا دیگه نگاه کنید این ایو ممکنه خودش به منه کدامه دیگه میتونیم بگیم کدام زمان کدام مکان کدام شخص کدام چیز این معادل تمام اونها میاد الان اگر من اینطوری گفتم نگاه کنید گفتم ایو شخص جا. ایو شخصن جاه این معادله چیه؟ من. منم منم مقدس. انگار گفتم من جا. اگر گفتم آیا شخصن معادله من ماندی. انگار گفتم من رأیت. اگر گفتم ایو تعامن آیات ای آمین؟ آیات آمین؟ ای تعام عکلته ای شیع عکلته معادل ماست اگر گفتم ای مکانن صلیت عی مکانن سلیت معادل اینه که بگم عین سلیت اگر گفتم ای زمانن جعت معادل اینه بگم متا بستگی داره به اینکه مضافان اله اگه گفتم ایه ها لتن معادل اینه که بگم کلیف از بستگی داره مضافان اله کدوم یکی از اینها باشه. معادل هر کدوم از اینها میتونه به چون خودش به معنای کدامینه لذا نگاه کنید و یوسعه بها به ها ان زمان مثل ایه زمان جهت ولحال ایه حالت جهتن وله عدد آه گاهی اوقات ممکنه مضافر علیهش عدد باشه مثلا ایه عددن من الرجال جاء ایه عددن من الرجال جا؟ ایا عددن منر رجال یعنی چه تعداد از مردان اومدن انگار گفتیم بگید کم رجلا جاء ول آقل و غیر آخر. اگه گفتیم ایا شخص جاء معادل من ایا شیعن اکلت معادل ما عاقل غیر عاقل الان حسب ما توضافه دارید به حسب اون چیزی که مضافه و علیه شد نگاه کنید این تیکه جمعی اول عدوات متقدمته همه این ادواتی که شما دیدید و ما براتون توضیح دادیم یطلب ربا به تصور همش تو جمله که بیاد باهاش طلب تصوری شده یعنی شما با باید جواب بده نعمولا نداره ولو زالکه یکون رو جواب و معها به جواب با تعین مسئوله حالا اینو دیدید بحث رو بخونم ساده است دیگه نگاه کنید الجمل المتقدمت و جمعه ها استفامیتون بحث همه جمله های گذشته استفامیت و اضات عملتا معانی ادات استفاامهن رعیط انما یوت لب و بهها تعیین لغلا و اگه دقت کنی معانی ادات استفام رو در اینجا می بینی که من باهاش تعیین اوقللا شده و انما ت کل غیدلوغلا مابرا غیر اوقللا و یوت لب و به هاارتتن شرحل اسم کم و, و اضاقلت مل کره و توضاب و به ان اون نکرا یعنی ان و تارتن یطلب بها حقیقت المسمه تعریف اون چیزی که نام برده شده رو میخواد لغتشو نمیخواد کمایزا قلتن مل اسراف و تجاو به انهو تجاوز حدق نفقت و غیران آدم بیش از حد استفاده کنه در حزینه یا غیران و وجد و میبینی که انمتا یطلب بها تعیین و زمان مازین و مستقبل مازی یا مستقبل مهم یا غیر مهم؟ و عیانه لزمان مستقبل خاصترن فقط برای مستقبل خاصترن و تکون اونی موضع تفخیم و تحلیل تفخیم یعنی تعظیم خیلی عظیم عجیب و غریب بزرگه سوال از واقعی خیلی عظیم و خولنجیز داره میشه لذا نمیگیم عیانه ناکولات تام که قضا میخوریم چون چیز مهم میشن جواب دیگه مثانه ناکولات تام ناکولات نا تام اما متا تقوم القیامه میگیم و متا مهم باشه مستقام ششگاه نده اما اگه با ایانه بگیم درسته ایانه تقوم القیامه داره. و هنکه عدواتون اخرال الاستفام یک کیفه و عینه و عنا و کم و عینه فکیفه یطلب و بها تعین الحال ما اش تعین حال میشه که گفتیم محلا منصوب حال یا خبر واقع میشه نه و کیفه چهتون؟ این که ایفه منصوب حال است از برای توم جهتون رضاق جوابش هم با تعیینه مثلا باید بگه راکبین یعنی جهنا راکبین و اینه یطلبه بها تاین المکان نهو اینه دجلت و الفراد دجلت و فراد کجاست با توضیح بده متعلق به ثابتتان موجودتان خبر مقدم دجرت و الفرات مقتدای معخر و انا تکونو به معنا کیفه گایی وقت به معنی چیف مثل نهوا نهوه انا تسودو لعشیرتو و عبناها متخاضلون انا تسود لعشیرتو این عشیره علعشیره این عشیره چگونه به آقایی برسه تسودو این به حالی هست و حالا که افرادش ابنایش متخاضلون پشت هم دیگر رو نمیگیرد پشت هم رو خالی میکنه میگه چگونه این عشیره به سروری و آقایی برسه در حالی که افرادش پشت هم رو خالی میکنه چگونه الان این اننا محلن من حال است از برای اشیده. اننا تا و تو و و ها المخواست. و به معنا و عینه من عین نه نب به من من عدم مثل انا هم حاضل مالو و کان و فقرآه یهدی رو نشون میدیم میگیم انا هم حاضل مالو این مال زیاد برای اینها از کجا اومده ما و و حالی است و کان و فقرها و حالا که اینا در گذشته فریر بود و هیچ ندند. این مال از کجا برای این ها پیدا شده این همه مال رو از کجا بردن در حالی که فقی رو ناداردن خب می فهمیم یعنی می نهید و به معنی متا به معنی متا می آن نهو من تو کلاس می گم انا یه دو قایب, میگم این قایب ها که حاضر می شن که می آن این هایی که الان قیبت دارن انا یعنی متا محلم منصوب ظرف است برای یهزارو انا یهزارو کم چی؟ و کم یطلب و بها تعین العدد. لعدد نه و کم جن کم مبتداست جن دیگن تمیزش فلکتیبته خبر چند تا سرباز توی این گردانه شما هم تعین میکنید میگید نه معت و جندیت ست کم جندیت فلکتی بذاری اما ایو چی و ایو فیوت نوبه ها تعین اهد المتشارکین یه امر یا امه تعین یکی از دوتا متشارک در یه امری یا امه هم این یکی از استعمالاشه این مثلا شما دو نفر دوتا داداشید درست شد؟ دوتا داداش هستید که در داداش بودن با هم شریکید خب من سوال میکنم از شما مثل این که نخو اخوین اکبر و سنن کدام یکی از این دوتا تا ها که در داداش بودن یا عمل دارن یا ام عیل اخوین اکبر و سنن کدومشون سندش بیشتره کدومشون بزرگید ایل کتابین انفعو کدوم یکی از این دوتا کتاب اینو دو نفع داره در نفع داشتن شریکن ایل کتاب این انفع و کدوم نفعش بیشتره بروس شد این از استعمالاتش و تقوال از زمان بر زمان واقع میشه میگم ایه وقت انجه معادل متا میشه ول مکان میگم ایه مکان انسلی تر معادل عید. وله حال حالت حالتن جئتر معادل کلیفه وله آقل گای اوقات به معنای من میشه میگم ایه شخصن جاه ایه شخصن اندکه معادل من غیر آقل میگم ایه تا آمن اکلتر معادل من الان حسب ما توضافه ده به حسب مضافونه نیش مضافونه معنا میکنه مزافون لاطش تعیین من میگه و جمعی و حاضل ادوا ببینید همه این ادوا تعطیل تصور همشون برای تصور می همه برای تصور لئ غیرون جوابشون هم با تعیین و لذالکه که یکن جواب و معاب تعیین مسئولات جواب با تعیین مسئولونن تا اینجا ما هرچی از استفهام تو این دوتا درس خوندیم همش مباحث نحوی و مقدمه بود درس سوم که المعان لطی تو استفاده من الاستفهام استفخام یعنی معانی مجازی که استفاده میشه از استفهام با وجود قرائن وقتی با قرائن میگه یعنی چی؟ یعنی معنای مجازی اینا رو شروع میکنیم خوندن معانی مجازی و حالا عدوات استفحام هم من، ما، حل، هرچی مخواد باش باشه از اینهای که خوندیم اون درس بعد اما نگاه کنید تو درس قبل من یه هاشیه برای شما جا گذاشتم که الان میخوام بخونمش تو صفحه 194 یه هاشیه هست هاشیه دو خوب دقت کن چون الان باید بخونم که با این تیکهی که در مورد ما خوندیم میخوام چه کنم نگاه کنید حل ما گفتیم که برای چی میاد تصدیق یعنی سوال از جمله. سوال از هست و نیست جوابش هم با نعم و لاست حلو گفتیم دیگه تصدیق جواب هم با نعم و لا حل دو قسمه مثل ما که دو قسم بود مایه شرحل اسمی و حقیقت المسمون حل هم دو قسمه حل هم دو قسم. میگه حل قسمان حل دو قسمه بسیطتون یه حل داریم حل بسیطه حل بسیطه که ان قصطف بها بهها ان وجودشه و عدمه موقعی که سوال کنیم از وجود یک چیز یا عدم یک چیز هست و نیستش اینو میگن حل بسیطه مثلا سوال کنیم آیا جن هست یا شما میگید نم جن وجود داره یا میگید لا اصلا نیست سیمرغ هست یا نیست سوال سی وجود خارجی داری یا نداری و حل سوالون حل الانقا و موجودتون شما میگی نم یا میگیلا؟ لا این حل بسیط است آیا انسان کامل تو عالم وجود داره حل الانسان کامل و موجودون کسی که 20 بیست بیست باشه آدم آدم داریم ما یا میگی نم یا میگی؟ لا این سوال از حس و نیست یک چیز به واسطه یه حل صورت میگیره بهش میگن حل بسیته. سوال ساده است از هست و نیستش سوال میکنه حل بسیته، اصطوف همه به ها ان وجودشه او عدمی او. نه بود مثال حلل انسان کامل و موجوده آیا انسان کامل وجود داره یا میگی نه یا میگه یه حل بسیط است. دوم حل مرکبه حل مرکبه یعنی چی؟ حلیه که سوال از عوارض وجود میکنه یعنی معلوم شده که هست بعد سوال میکنیم که حالا این که هست غذا میخوره این که هست راه میره این که هست پرواز میکنه اینجا حل مرکب است مثلا میگیم حلل انقا اون موجودتون آیا سیماغ وجود خارجی داره؟ شما اگه بگید لا دیگه اصلا نوبت به حل مرکبه نمیرسه خب این نیست سوال از چه عوارزش اما اگه گفتی نه بله سیماغ هست خب سوال کردیم من اینجا میتونم سوال بکنم از شما حل رو آیا میپره؟ حل طبیزو آیا تخم میگذاره؟ حل تصیحو آیا سیه میکشه؟ از عوارزش داره حل مرکبه و مرکبتون این اصطف همه بها ان وجود شیء لشیئن اگر استفهام بشه از وجود چیزی برای چیزی این یه چیزی هست ما از عوارز اون وجود فعال نه حال نبات تو حساسون آیا گیاه حس میکنه یعنی درخت و مثلا سوراخ کنی دردش میاد؟ خب این قبلش باید ما سوال کرده باشیم خلل نبات تو موجود و اصلا ما گیاه داریم و خب نهگه سوال کنیم وای قات برمون مفروضه که داریم؟ خب یه سوال از عوارض میکنه. ولی اگر فهمیدیم که هست درست شد سوال از عوارض وجودیش. کالا نگاه کنید ما دوتا استفهام با حل داشتیم یکی حل بسیطه و دیگری حل مرکبه دوتا هم ما داشتیم یکی مای شرحل اسمی درست شد و یکی هم مای حقیقتل مسمون مای شرحل اسمی و مای حقیقتل حالا اگر ما اگر ما بخوایم یک چیزی رو در مورد یک چیز در مورد یک چهار تا سوال رو ردیف کنیم در مورد یک چیز این چهارتا سوال رو ردیف کنیم چجوری تا میکنیم؟ یعنی مثلا اول مای حقیقت المسمه میاریم بعد حل بسیطه میاریم بعد حل مرکبه میاریم بعد مای شرحل اسمی میاریم چجوری این ردیف میشه؟ یعنی در مورد چیز مثلا سی موقع بچینیم این سؤالات چهار تا سوال ردیفی بیاد به ترتیب دو تا حل داریم، دو تا ما داریم. اینها رو چجوری رد هم سورت میکنیم و مینویسیم. چون حالا فهمیدیم دیگه حل بسیطه چیه، حل مرکبه چیه، مای شرح اسمی چیه و مای حقیقت المسما چیه. اگر بخوایم سوال بکنیم اول با چی سوال میکنیم اول با حل سوال میکنیم یا با ما با کدوم حل حل شرح اسمی یا حل حقیقت با حل بسیته یا حل مرکبه بعد ما اگر این بیاریم کدوم ردیف کردن اینها مبحثی است که ما داریم حالا نگاه کنیم من یه سوال یه مطلب فرض کنید که میخوایم این رو در مورد مثلا انسان کلمش انسان داشته باشیم خب اول باید چی سوال کنیم اول همه باید مای شرح و رو بیاریم بگیم مل انسان بگه بشر انسان چیه؟ میگه بشر انسان یعنی بشر خب لغت رو برام معنا از اول مای شرحال می کلمه رو بفهمم چیه دیگه دوامی سوال اول مای شرحال می بعد دوامیش چیه حل بسیطه حالا اینکه من فهمیدم انسان یعنی بشر آیا وجود داره میگن حل انسان رو موجود آیا انسان هست اگه بگه نه خب دیگه توی سوالی نداره اگه بگم هست نه خوبی میشه حل بسیده بعد چی میشه بعد مایه حقیقت المسمومی حالا این انسانی که است تعریفش چیه میگه ال انسان و حیوان و ناطق این انسان عبارت از سیزوی حیوانی که میتونه عقل داشته تعریفش بعد چی میشه بعد دیگه شعال از عوارزش حلل انسان و یلد و آیا این انسان میذاد حلل انسان و یتکلم و آیا صحبت میکنه حلل انسان و یعکل و آیا این انسان پس اگر بخوایم این چهار تار ردیف رده هم بیاریم اول کدوم میشه؟ حلل شرحل اسمی چیز مای شرحل اسمی بعد حلل بسیطه بعد مایه حقیقت و لما بعد حل مرکده سوال ها پشت سر هم میاد مثلا در مورد سیمار با. میگه مل انقا انقا چیه اینجا نوشته برامون میگه تا ایرونستوری توضیح تا ایرونستوری پرنده افزان بعد میپرسیم حل الانقا و موجودتون آیا این انقا هست فرض کنید بگه نه اگه بگیم لا که دیگه چونه؟ نه هست بعد میگیم خب مل انقا حالا این انقا که هست تعریفش چیه؟ تعریف کن. بعد که تعریف کرد درست شد شروع میکنیم به عوارضش پرسیدن. حلل انقا و کذا؟ حلل انقا و کذا؟ مثلا در مورد خفاش میگه مل خفاش خفاش چیه؟ میگه تا پرنده است میگه هل خفاشو موجود خفاش داریم تو حالا میگه نه بعد میگه مل خفاش این دفعه خفاش چه نوع یه تعریف کن میگه تا ولود پرندهیه که زایمان میکن پستانداری بس شروع میکنه حالا این پرندهی ای که پستان داره که ما شناختیمش آیا بگید پروازم میکنه آیا گیاهخواره؟ آیا فلانه و غیره پس شما این رو هم فهمیدید من برای خاطر که بتونید ردیف هم بکنید این کارو با همدیگه دیگه سنخیت دادم که بتونید بفهمیدش. اصل درس استفام برای جلسه بعد ما موند این دوتا رو میخونید که اون اصل استفام رو تو جلسه آینده براتون بخونم و مبحث رو کامل کنید چون درس استفام هم درس نحوی بود و هم درس بلاوی قسمت بلاویش مونده که انشالله با هم خواهیم موند موفق و معید و منصور باشید در پناه خداوند تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برکم